رعد و برق تندیزد با صدایی محیب و دانه های درشت باران انعکاس صدا پر خود را به سر شهر کشید و رفت و او به ابرهای تیره بالای سرش نگاه کرد خودش را به زیر تاقیه ساعت سازی کار رساند و در پناه آنجا استاد دستها در جیب و با لبخندی که ریافش را قمنگیستر نشان می داد. توی دلش گفت شقایق بزرگ در آسمان ترکی پرپر پر قطرهاگ سرد بارش شکوفه و بعد هر چه فکر کرد نتوانست بقیه شعر را به یاد بیاورد باز نگاهی به آسمان و بعد به در بسته قهوه فروشی سرن انداخت دلش مالش رفت و چیزی روی قلبش سنگینی کرد سیگاری از جیب کتش بیرون آورد و کبریت کشید از تابستان سیگاری شده بود کبریت کشید اما باد آن باران تند نمیگذاشت. آن وقت در دو دست گره شده اش کشید و این بار سیگار را روشن کرد. دندان هاش را به هم فشرد و به راه رفتن من فکر کرد، جمعیت را سریعا از نظر گذراند، هیچکس مثل من راه نمی رفت. حتی دخترهای محصل که از مدرسه بر می با آن روپوشهای سرمهی و جراب سفید و آن کتابهای زیر بغلشان و شور و شری که زیر باران انگار می رخصیدند، نمی توانستند، نگاهش را یک لحظه به خود جلب کنند روبان صورتی هم به موهاشان بسته بودند یکیشان موهاش مشکی و انبوه بود ولی هیچ کدام از آن دخترها مثل من راه نمی رفتند. من تند راه میرفتم و دستهام دو طرف تن امتاب میخورد و جهش جهشهام مثل اسب های مسابقه بود. و وقتی راه میرفتم حتی وقتی آرام راه میرفتم موهام از پشت سر بلند میشد و همین بود که او خیال میکرد جهش میکنم اصلا دلیلش را نمیدانست فقط پریشان بود با آسمان نگاه کرد باران تند میبارید و لایه های گلولا را که از کپه های یخ روی زمین مانده بود میشست درختها میخواستند جوانه بزنند من تند راه میرفتم گفته بود خیال میکنم حالا پاهات میپیچند به هم و میخوری زمین من گفته بودم آلبالو اما دقیقا قصدم این بود که لبهام را قنچه کنم و در آن حیات بزرگ پر از گل و درخت روی تاب بنشینم و تاب بخورم گفتم میخوری گفت نه و لب نشه نشست کوتو شلوار گشمی پوشیده بود با پیراهن آبی کمرنگ گفتم خاکی نشوی گفت مهم نیست و خیره تاب خوردن من شد گفتم لاوا خندیدم و سرم را یکور کردم گفت لاوا گفتم اینچ پسس حالا هر چه فکر کرد این کلمه یادش نیامد به ذهنش فشار آورد اما بیفاگده بود. به در وسته قهوه فروشی نگاه کرد و ایستاد که باران بند بیاید. دست چپ و سه انگشت از دست راستش را در جیب شلوار فرو برده بود و مرتب به سیگارش پک میزد. یکی بهش گفت سلام. نشنید. واقعا نشنید. داشت به من فکر می آن وقت باران گرفت. و من دیگر تاب نخوردم، روی حض پر از موجهای گرد و کوچولو بود، و ماهی ها بالا می جهیدند که حباب باران را ببل اند. گفت، احساس می این باران برای من می‌بارد. و از گوشه چشم چنان نگاهم کرد که ناچار شدم دوباره بگوگم آل بالو. گفت، تو هم به خاطر من این همه قشنگ شده ای. گفتم، من که کاری نکردم نه آرایش نه چیزی فقط حمام رفتم گفت تو همیشه میروی حمام گفتم اذیتم نکن رفتیم توی ساختمان دم پله‌ها دستم را گرفت و من صدای تند قلبش را از توی دستهاش می‌شنیدم بعد رفتیم بالا اتاق بالا های سفید داشت همه را کنار زدم که بتوانیم باران را تماشا کنیم گفت درخت‌ها هم به خاطر من جوانه زده‌اند و با سرنگوشت چند تار موی روی پیشانیش را کنار زد و با صدای لرزان گفت ولی نمیدانم من برای چی زندگی‌ام هیچ کس نمی‌توانست به عمق چشم‌هاش پی ببرد و من اینجا از همان اول دریافتم آن شب که به زندگی ما وارد شد شولاپوشی پوشی تبربردوش بود که قدمهای بلند برمی داشت بگذربت کندگ درخ را به دونیم میکرد و همراه بازر به مینالید. اما جوری تربیت شده بود که رفتارش با دیگران تفاوت داشت دنیا را جدید تر از آن میدانست که دیگران خیال میکنند. آن شفه کردم از ترس دوچار این حالت شده اما بعدها به اشتباه خود پی بردم و دانستم که درک او آسان تر از بوییدن یک گل است کافی بود کسی او را ببیند و من نمیدانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت آیا کسی می توانست بفهمد که دوست داشتن او چه لذتی دارد و آدم را به چه ابدیتی نزدیک می کند آدم پر می شود جوری که نخواهد به چیزی دیگر فکر کند، نخواهد دلش برای آدم دیگری بلرزد و هیچگاه دچار تردید نشود، نه. او با همان پالتوی بلند و بلوز دست باف زبر و پاپاخ کهنه تنها ظاهر را نداشت. این پوشش ها را که از تنش بر می داشتی آفتابت می کرد. همیشه بوی چوب و لاک الکل می داد. این بو را یک سال از پوچگاه شناخته بودم. وقتی آن را باز میکردم که روزنامه را بیاندازم، بوی لاک الکل و چوب به مشام میخورد و کیف میکردم. ناگاه سکوتی ذهنش را گرفت. هرچه بود خلع و بیوزنی بود. چشمهای آیدین تطابقش را از دست داد. باران. آدمهایی که میدویدند یک شتر سیاه تابلو قهوه فروشی سرن و همه آن چیزها را میدید سکوت وحشتناکی جای همه آدم های ذهنش را پر کرد و او دیگر یادش نمی‌آمد که به چه کسانی فکر می‌کرده. فقط تهماننده دلچسبی از یک یاد خوب آزارش میداد که تا میآمد پیداش کند آیدا آمده بود. هیچ کاریش هم نمیشد کرد. آیدا در ذهنش می و زیر سایه ها آتش را میگیرند تا برای پدر چای بگذارد. بچهش سحراب هم توی بقل بغل آیدین بود و او تکیه داده به درخت بچه را تکان میداد و کتاب هم میخوااند. پدر گفت: «چی میخوانی آیدین؟ آیدین گفت: «شعر از بر میکنم. مادر برای آیدین طالبی رنده کرده بود. آشقی هم آن افزوده بود و خرده های یخ روی طالبی برق می زد. پدر گفت پس برای اورهان مادر گفت بیکار و بی آر نشسته خب بیاید بردارد بخورد. پدر گفت مگر آن یکی سال در دوازده ماه تخم دوزرده می کند؟ مادر گفت برکت خدا همه تان اید پدر گفت من به خاطر یک طالبی حرف نمیزنم که منظورم این است که بین بچه هات فرق نگذاری مادر گفت لابد مثل تو تخمکینه سالها پیش پاشیده شده بود و نیازی به کشت تازه نبود و بچه ها می می آمختند. من دنباله ذهنش را گرفتم و باز تسخیرش کردم، اما قصد آزار دادنش را نداشتم، خودش میخواست که رهاش نکنم، میخواست بگویم موی سر مثل باغچه مدام به مراقبت احتیاج دارد، و من گفتم، و انگوشت هام لای موهاش وول میخورد، احساس میکردم داغ شدم، گفتم، ولی خوب بلد نیستم، گفت، مهم نیست خانم، همینقدر که لطف میکنید ممنونم، گفتم، حسدتان سر نمیرود گفت برای چی؟ گفتم از این کارگاه، از اینکه که یک سال و نیم تنهایی سر کرده اید؟ گفت عادت کردم و چشمهاش را بست و به من فرصت داد که با خیال راحت موهاش را مرتب کنم، بعدها دانستم که دوست دارد همیشه با موهاش ور برمم اما به من نگفته بود و خودم می بایست می فهمیدم که دوست دارد صورتش را نوازش کنم. چند بار نیم خیز می شد. نمی گفتم نه. میخواهم وقتی میخوابی نگاهت کنم. با آرامش آرامشی بی نظیر خودش را رها می کرد لای دست و به خواب می ره. یک روز صبح، ماها بعد از مرگ آیدا، وقتی از خواب بیدار شد، من هنوز نشسته بودم و موهای صافش را نوازش می پا شد جلوم زانو زد، دست هام را بوسید و گریه کرد. گفت، همین چیزهاست که نمی توانم از تو دل بکنم. مرگ آیدا لطمه شدیدی به روحش زده بود. احساس دلتنگی و تنهایی می کرد. شبها نمی توانست راحت بخوابد، کابوس می دید، عرق می کرد، هزیان می گفت و به بحانه های مختلف گریه می کرد. می گفت، همسایه هاش گفتند، آبادانی آن شب آیدار را از خانه انداخته بیرون، حالا چرا؟ هیچکس کس نمی داند. روزنامه ها هم که چیزی ننوشته بودند، آن مرد که هم که گذاشت رفت آمریکا، به گمانم آیدا در وضعیت بدی بوده که نه روی برگشتن به اردبیل داشته، نه جای دیگری توانسته برود. خب، این بلا را سر خودش. من از ذهنش رفته بودم و آیدا آمده بود. جایی ایستاده بود و ناخونهاش را میجوید. پدر گفت، جهیزیهی که به تو میدهم در خور آدمی مثل من نیست. ولی کسی که به بخت خودش لگد بزند، بیش از این نباید توقع داشته باشد. مثل همان حرفی که سالها پیش به آیدین هم زده بود. تو لایق شلوار پشمی نیستی، یک دست کازرونی نخی برات میگیرم که دیگر خودسر حرفی نزنی. ویدین هیچ وقت آن شلوار را نپوشیده بود و گفته بود، من لباسهای کهنم را تمیز نگه میدارم. تندر و باران همچنان ادامه داشت در چاله‌های خیابان آب جمع شده بود و گاه که ماشینی میگذشت آب گلالود به اطراف می‌پاشید. آبران زیر تاغیها جمع شده بودند و خیابان تقریبا خلوت بود چقدر مادر اصرار داشت که او زن بگیرد مدام می‌گفت میخواهی دختر دای ناصرت را برات بگیرم گفته بود حرفهایی میزنی مادر و یاد من افتاده بود مادر می گفت بیا عکسش را نگاه کن ببین چه خوشگل شده؟ گفته بود: مادر من خودم اینجا زیادییم تو میخواهی دختر دایناسر را از ارومیه بیاوری اینجا که چی بشود مادر گفت هرطور که تو می خواهی سکوت کرد بادین باز یاد من افتاد و حالا باز من به ذهنش آمدم. با پیراهنی ارقوانی رنگ، آستین های بلند، یقه بسته، دامن تازیر زانو و کفش های مشکی، همانطور که او دوست داشت و وقتی به آدم نگاه می‌کرد دست بردار نبود، دلش می‌خواست جلوش حرکت داشته باشم، چای بیاورم، کتابها را در قفسه بگذارم، تکهی هیزم در شومینه بیاندازم و در حین کار حرف بزنم و من، به همین لحظه ها خوش بودم. براش حرف میزدم پردهها را میکشیدم باز می کردم و مدام دنبال کاری میگشتم که جلو او انجام بدهم. چون او دلش میخواست که در برابرش راه بروم و این را من بعدها فهمیدم. همیشه زمان مثل باد میگذشت و من هراس داشتم که مبادا بخواهد برود. گفتم هر طور تو به خواهی زندگی میکنم. هر کار بگویی انجام میدهم بگو بمیر او ساکت روی صندلی نشسته بود و نگاه می کرد گفتم تو فرمان روای مطلق من هستی خندی پا شد چند قدم طرف پنجره برداشت که خیال کردم میخواهد به خانهاش برگردد اما دوباره برگشت و روی صندلی نشست دلم میخواست چیزی بهش بگویم که بداند. چقدر دوستش دارم گفتم تو مسیح منی، جلو صندلیاش زانو زدم سریب کشیدم. دست دستهام را به هم گذاشتم و به حالت احترام سرم را جلو بردم پیشانیم را بوسید همیشه دلم پرپر میزد که او را ببینم نمیدانم چرا میترسیدم اگر نگایید چه کنم؟ به او گفتم که عشق را باید با تمام گستردگیش پذیرفت، تنها در جسم نمی توان پیداش کرد بلکه در جسم و روح و هوا در آینه، در خواب، در نفس کشیدن ها انگار به ریه می رود و آدم مدام احساس می کند که دارد بزرگ می شود این چیزها را زمانی فهمیدم که او یک ماه به خانه ما نیامد در روزهایی که آیدا مرده بود و او بعد از چهار سال به خانهشان برگشته بود